بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین السلام و السلام على سیدنا و نبینا محمد و على آله تیبین التاهرین المعصومین لا ما بقیت الله في الارزین اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و يعود السلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون و على المرسلين والحمد الحمد لله رب العالمين السلام عليك ايها النبي و الله و السلام على الائمه الهادين المهديين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 السلام علو علی ابن الحسین زین العابدین السلام علو محمد ابن علی باغر علم النبین السلام علو جعفر ابن محمد الصادق السلام علو موسی ابن جعفر الكازم السلام علو علی ابن موسی رضا، السلام علو محمد ابن علی الجباد السلام علو علی ابن محمد الهادی السلام على الحسن ابن علي الزكي الأسكري السلام على الحجت ابن الحسن القائم المهدي السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله اخر الاحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي علی ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى الصحاب الحسين امام باقر علیه السلام فرمودند وقتی که امیر المؤمنین علیه السلام از سرزمین کربلا عبور کردند فرمودن اینجا سرزمینی است که مناخ و رقابن و مسار او آشاغن شهدا. لا یسپقهم من کان قبلهم و لا یلحقهم من بعدهم بهار جلد چهل و چهار سپی دویست و, و فرمودن اینجا سرزمینی است که بزرگان و افراد با شخصیتی در اینجا فرود خواهند آمد و اینجا جایگاه جنبازی شهیدانی عاشق است انهایی که نه قبلیها بر آنها سبقت گرفته‌اند و نه بعدیها میتوانند سبقت بگیرند دیشب عرض کردم ما به عنوان شیعیان ابی عبدالله الحسین علیه السلام از این محرمها و آشوراها و از این جلسات و ایام سوگباری بناس درس از مکتبشون بیاموزیم و انشاءالله گونه که مورد خاست اونهاست عمل کنیم. خب این فرمایش امیرالمؤمنین ذهن ما را درگیر می کند که شهدای کربلا بر چه مبنایی در زبان امام معصوم سید الاولیا امیر علیه ریح السلام اونگونه معرفی شدهاند که نه قبلی ها به آنها رسیدند و نه بعدی میتوانند می برسن آیا منظور فقط شهید شدن و جان در راه خدا دادن است خب قبل از واقعه کربلا هم ما چه در دنیای اسلام شهدایی داشتیم و چه در پیروان ادیان قبلی در دفاع از دین و راه خدا شهدایی وجود داشتند بعد از واقعه کربلا هم این همه افراد در راه دین و خدا به شهادت رسیدن چرا امیرالمومنین علیه السلام فرمودند اینها شهیدانی هستند که نه قبلی و نه به مقام اینها کسی نمیرسد. البته در فرمایشات خود امام حسین علیه السلام هم در صبح آشورا داریم این معنا رو که ابی عبدالله علیه السلام بعد از اتمام و حجت خطاب به اصحابشون فرمودن شما امت من و اصحاب من از کسانی هستید که مانند شما نخواهد بود غریبه به این مضمون. حالا دو واژه در فرمایش امیرالمؤمنین نهفته شده که این دو باجه رو کنار هم قرار بدیم بحث ما رو به خودش مشغول کرده این چند شب یک شهید دو شهید عاشق فرمود اینجا مسار او عشاق شهدا شهید در فرهنگ دینی به کی میگن کسی که فقد و فقد، تنها و تنها به خاطر خدا بالاترین سرمایه وجودیش که جانش باشه هدیه کنه. یه وقت انسان مالش رو میده در راه خدا. یه وقت انسان آبروش رو میده در راه خدا. یه وقت انسان امکاناتی در اختیارش به خاطر خدا هدیه میکنه. اما یه وقت جانش جانشو برای خدا میده، برای خدا. در صورتی اون کس که جان در راه خدا داده شهید نامیده میشود که هیچ انگیزه ای برای این عمل غیر از خاست خدا و رضای خدا نداشته باشد. لذا ما در تاریخ اسلام داریم که در جنگ احد فردی در سپاه نبی اکرم، خیلی جدی شمشیر میزد و میجنگید و پیش میرفت. خبر آوردن یا رسول الله فلانی شهید شد حضرت فرمودن او شهید نیست او کشته راه حماره کشته راه علاقه گفتن یعنی چی یا رسول الله فرمودی یک حماری دست یکی از اون افراد سپاه مقابل بود و این عجیب دلش رو گرفته بود میجنگید؟ به عنوان قنیمت جنگی اون رو بگیره و در این راه جانش داد پس این شهید حساب نمیشه شهید در فرهنگ دینی اونقدر عظیم است و عظمت دارد یعنی بالاترین سرمایه شو در راه خدا به خدا عرضه کرده وقتی شما در قرآن کریم به حضرت ابراهیم خلیل و به عنوان یکی از برجستگان انبیای توحیدی شیخ الانبیاء از او خطاب میکنن مقام خلت خدا به او داده شما یه استادی وقتی شاگرد و او به یه درجاتی میرسه یک امتیازاتی براش در نظر میگیره به بعضی میگن شما رو مدرک لیسانس دادیم به بعضی ها میگن کارشناسی ارشد دادیم به بعضی میگن به شما نشان دکترا دادیم نشان چه و چه و چه خدای عالم به ابراهیم خلیل و نشان خلت داده خلیل الله ابراهیم خلیل الله است بر چه مبنا ابراهیم خلیل الله است وقتی خدا میگه مال تو در راه خدا بده بی مزایقه داده وقتی میگه پسر تو در راه خدا قربانی کن آماده کرد به قربانگاه آورد کاردم به گلوش گذاشت ولی حالا خدا برای حکمتی که داشت نخواست وقتی که جانشو در معرض خطر قرار دادن که یا نگو خدا یا میندازیم تو آتش بو بندازید فرقی نمیکنه لذا خدا میگه این فرد خلیل الله است خلط داره دوستیش با خدا فقط برای خداست و لذا از زبان حضرت ابراهیم خلیل الرحمن در قرآن کریم این بیان را تز فکری ابراهیم اینه انسلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین صلات من حیات من ممات من نسک من زنده همه چیز من خلاصه لله برای خداست اون انسانی که بالاترین سرمایه وجودیش که جان باشد لله هدیه کنه این میشه شهید اما اینجا امیرالمومنین لفظ فقط شهید رو به کار نبرده طبیعی است که هم قبل از کربلا اده اینجوری شهید شدن لله جان باختن و هم بعد از کربلا تا امروز هستن افرادی که جانشون رو واقعا به خاطر خدا میدن لله به مقام شهادت نائل شدن ولی حضرت فرمودن مسار و عشاق این شهدا اینجا جایگاه جانبازی عاشقان شهید یا شهیدان آشغ است پس حرف در این واژه دومه یعنی اگر شهیدان شهید آشوانان متاسفانه در طول تاریخ ادیان هم در تفسیر آیات کتاب الهی قرآن کریم هم در تحلیل و درایت احادیث معصومین علیهم السلام هم در ارزشها و واقعیت های دینی من آمدن برخی جاهلانه برخی دیگر برداشتهای غلطی کردهاند که اون برداشتهای غلط مشکلات درست کرده مثلا فرض کنید گروهی آمدن که در رأسشون الان وحابیت و اینم در طول تاریخ ریشه داشته به ظاهر برخی از آیات به گونه‌ای چسبیدن که مثلا اگر میگن علال یعنی واقعا یه تختی است خدا رفته روی این تخت نشسته تختم چنین و چنان بوده هرچی میخوان برای اینا توضیح بدن آقا خدا جسم نیست خدا مکان نداره این کنایه است اینها تعویل داره یعنی خدا بر هستی مسلطه نمیپذیرند خب این بدبرداشت کردن از دینه یکی از اون جاهایی که بد برداشت شده در طول تاریخ و خیلی هم خطر درست کرده اینه که کار آشقانه عاقلانه نمیتواند باشد بین عشق و عقل همراهی و تعامل وجود ندارد لذا اینجا چند دسته شدند یه دسته اومدن گفتن چون سرمایه اصلی ما عقله دین هم روی عقل تاکید کرده و بناس ما با عقل حقائق را بپذیریم. پس اگر عشق با عقل تطبیق نمی کند پس عشق رد کنیم عشق غلط خب ما می بینیم در زبان معصومین علیه السلام عشق با عنوان بار مثبت ذکر شده یکیش همین جاست ارزشی ارزشی که برای شهدای کربلا امیرالمؤمنین علیه السلام بیان فرمودن و عنوان شهیدان عاشق است اگر عشق بر اینجا بار منفی داشت اگر عشق مورد پذیرش فرهنگ دینی نبود خب امیرالمؤمنین که این گونه نمی‌ستودند و در اصول کافی از پیغمبر اسلام روایت داریم کسانی که عبادت می‌کنند ترین شکل عبادت چه نوع عبادتی است حضرت فرمودند عبادت عاشقانه من اشغل عباده توی کافی به کار رفته ما میتونیم عبادت تاجر پیشگانه داشته باشیم عبادت بردسفت داشته باشیم عبادت منفعت طلبی داشته باشیم ولی عبادت عاشقانه عبادت محبانه ذکر شده و خود کلمه عشق در حدیث به کار رفته منعشقل عباده کسی که عشق به عبادت میورزه. خب پس این که تو روایات ما اومده حالا در کنار روایات خود عقلم راجع این چه میگه که داریم با هم بحث میکنیم. پس دسته اول اومدن گفتن چون عقل مهم است اگر عشق با عقل سازگاری ندارد ما عشق رو میذاریم کنار فقط با عقل پیش میریم. دسته دوم اومدن گفتن که عشق ارزنده است عشق یک حالت نفسانی است و من نمیتونم این حالت نفسانی رو از خودم دور کنم لذا من عاشقانه در یک مسیری قرار میگیرم اگر یک کارایی انجام دادم با عقل تطبیق نمی چون تون آشغانه است یه قرار نیست کار عاشقانه با عقل تطبیق کنه اونایی که آمدن و من این کارو کردن قصد داشتن قصدشون چی بوده؟ هر نوع کار خلافی رو مرتکب بشن هر عمل غیر عاقلانه رو انجام بدن شما وقتی انتقاد میکنید اخ این کار شما دلیل نداره این کار شما منطق بردار نیست این کار شما با ادله عقلی قابل رد شدن جوابشون این باشه این عاشقانه است دیگه عاقلانه نیست خب آیا اینه میشه پذیرفت نه شر میپذیره نه عقل حالا دلایلشو عرض میکنم این دسته دوم شده دسته سوم کیانه؟ پیروان راستین مکتب انبیا و ائمه اطهار علیهم السلام که شهدای کربلا نمونه بارز عملیشان که داریم با هم بحث میکنیم میگن عشق و عقل با هم جمع میشه هر کدوم یک مراحلی رو داره باید از اون مراحل شروع کنین بیاین تا به خودش برسیم مطالبه که بر مبنای عشق است خلاف عقل نمیتونه باشه و اگر عقل به حریم عشق راه ندارد حافظم گفته ای که از دفتر عقل آیت عشقاموزی ترسمین نقطه به تحقیق ندانی است حرف درسته ولی تعارض نیست یعنی چی؟ خب اینا باید زحمت کشیده بشه، باید بحث بشه، باید مطالعه بشه، باید روش کار کنیم بریم جلو. خب حالا برای اینکه به این ای مطلب برسیم، اول میایم میگیم که اصلاً ارزش ما انسان ها که از بقیه مخلوقات پروردگار بالاتر رفتی مال چیه؟ اینکه خداوند با خلقت ما انسان ها فرمود نیجا الونفل فلارز خلیفه. خب قبل از ما خدا جنیان رو خلق کرده بود. توی جنیانم موجوداتی مثل ابلیس که با اون درجات عبادی نائل شده بودند که هم نشین فرشتگان بودند. مخلوقات دیگر رو خدا آفریده ولی خدا برای این انسان یه حساب دیگه باز کرده و در آخر سوره احزابم در رابطه با این انسان باز فرمود انا ارزن الامانه علی سماوات و ما این امانت الهی رو به ها و زمین یعنی کل عالم هستی عرضه کردیم فعبین ان عمله اینا نتونستن حمل کنن و نسبت به اون توانو نداشتن و حمل حل انسان اما این انسانی که این قدرت رو داره حالا سوال این که انسان را خداوند به عنوان اشرف مخلوقات معرفی کرده در رابطه با چیه بیایم تو انسان شناسی بعد عشق و عقل با شناختی که از انسان پیدا میکنی معنی پیدا می کنیم. حقیقت انسان، انسانیت انسان، تمثل انسانی انسان که این موجود را به نام انسان نامیده و این همه ارزش ها برای او در نظر گرفته، مال این بدنه قطعا نه. چون بدن که گوشت و پوست و استخانه، سیتوپلاس و پروتوپلاس ما هسته است، تو این عالم دیگه، گاب و کرگدن و فیل از من و شما بدن خیلی قویتری دارند و عناصر مادی من رو حساب کنید تو کره خاکی هم وجود داره لذا قرآن کریم وقتی میخواد موجودیت انسان را معرفی کند در سوره مبارکه مؤمنون از آیه 12 به بعد ابتدا وقتی موجودیت مادی را مطرح میکنه و لقد خلقنا انسان من سلالت من تین بله ما بدن این انسان رو از خاک آفریدیم ثم جعلناه نطفه تن فی قرار مکین بعد قراری که تکثر موجودیت این انسان از قضیه نطفه بشه و این نطفه مراحل مادیشو باید در رحم مادر طی کند علقه بشه، مزقه بشه و کسون العظام لحما گوشت و پوست و استخوان پیدا کنه، خیلی خوب این موجودیت مادیه من اما میاد روی یه نکته دیگه انگشت می‌گذاره ثم انشأناه خلقا آخر نه آخر آخر یعنی پایان آخر دیگر یه موجودیت دیگه بود دادیم یه هستی دیگه براش بخشیدیم بر مبنای اون موجودیت دیگر است که این انسان این همه ارزشو پیدا کرده اون موجودیت دیگر رو که ما به این انسان دادیم چیه؟ نفخت و من روحی یسالونه که انه رو قل روحو من امر ربی ما یک حقیقتی از عالم امر که نفخه الهیست در این انسان قرار گرفته حالا این انسان انسان شده خطبه اول نهج البلاغه مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام وقتی موجودیت انسان رو داره برای ما توضیح میده خدا آدم و آفرید بدنش رو از خاک قرار داد وقتی خاک آماده شد ثم نفخه فیها چون تربه فرموده ها آورده ثم نفخ فیها من روحهی فمسلت انسانن درو از روحش دمی فا این فا که در اینجا آورده فای نتیجه فای تفریع پس نتیجه نفخ روح الهی در این تربه فرع بر این انایتی که خداوند نسبت به موجودیت این انسان کرد مسئول انسانال حالا انسان شد حالا تمثل انسانی پیدا کرد یعنی منهای نفخه روح انسان انسان نیست انسان بدن انسان است جسد انسان است جنازه انسان است ماده وجود انسان است شما میگید کت من کت من من نیست دست من دست منم من نیست بدن من بدن من هم من نیست لذا وقتی یک انسانی این نفخه روح الهی در وجودش با مرگ جدا می شود طبق آیه چلو یک چلو دو سوره مبارکه زمر اللهو یتوفل انفس موتها وقتی مرگ یک انسان فرا می رسد این نفس را کامل از او تحویل می گیرند. شما میگید من رفتم تشیه جنازه فلانی نه فلانی فلانی کیه؟ فلانی حقیقت نفسانیه به محضی که نفس از بدن جدا شد میره تو عالم نفسانی که برزخ بدنه که مال عالم ماده است که قرار ما تو خاک قرارش بدیم خب پس مسئولت انسانن به فرموده امیر المؤمنین در خطبه اول نهج البلاغه و در آیه شریفه قرآن ثم شعناه و خلقن آخر امیر المؤمنین علیه السلام در زیل این آیه حدیث از ایشون نقل شده از ایشون پرسیدن آقا این خلقت آخر خلقت دیگر یعنی چی فرمودن خود قرآن جواب داده چرا به قرآن دقت نمی کنید که فرمودن نفخت و روحی. پس موجودیت دیگر ر نف... نفخه روح الاهیست. وقتی نفخه روح الهی شد انسان میشه انسان لذا انسان الهیست اله نیست اشتباه نشه فارسیش بگم انسان خداییست خدا نیست بسیاری از قشریون از مذهبی ها به این نکته های ظریف معرفتی قرآنی و روایتی و حکمی و عرفانی توجه ندارند به محضی بگید انسان خداییست الله اکبر از تغفر الله این چنو برداشت؟ آقا انسان الهیش یعنی قدرتی به نام عالم امر الهی خدا در این وجود قرار داده میتونه جلوه عظمت الهی رو در این عالم نمایش بده که اوجش میشه امیر المؤمنین علیه السلام میشه معصومین بعد میشه پیروان اونها خب همه حقیقت انسانی انسان مال نفقه روح است. حالا این نفقه روح الهی که در انسان صورت گرفت نامشو میذارن نفس رو میذارن نفس خب حالا که نفس تعلق نفخه روح الهی در این جسم به اذن الله این نفس از اون جهت که میتواند احساس محسوسات کند بهش میگن حس مثلا میبینه حس بینایی میشنوه حس شنوائی، لمس میکنه، حس لامسه، بو میکشه، اینا مال چیه؟ مال بدنه؟ نه؟ لذا وقتی که این نفس از بدن جدا شد، هیچی یک از این قدرت ها در این بدن نیست، انقدر اهل فن زحمت کشیدن، خون دلها خوردن، اینا رو بحث کردن عدله دارن. من فقط با یه اشاره عرض می کنم چون ازل بحثم این نیست. آقا الان این عینک رو بنده به چشم میزنم این نوشته رو میخوانم. عینک رو بردارید من این نوشته رو نمیتونم بخونم. عینک علت است برای خوندن یا ابزار علت است برای خوندن؟ ابزار علت بر مبنای رابطه علت و معلول چون اگر علت باشه علت بود معلول حاصل میشه خب عینک بود باید خونده بشه اما از طرف دیگر عینک نباشه منم که نمیتونم پس این قدرت بینایی من به این ابزار نیازمنده همونطوری که زبان ابزار انتقال این مفاهیم ذهنی منه آیا این مفاهیم ذهنی مال این زبان است نه؟ زبان ابزار انتقاله حالا اگر این زبان قطع شد ابزار انتقالش وجود نداره. این مال قدرت نفسه نفس از اون جهت که با ابزار بینایی میبیند بهش میگیم حس بینایی. نفس از اون جهت که با ابزار شنوایی میشنود بهش میگیم حس شنوایی. پس یک جنبه یک بعد از ابعاد نفسانی تعبیر دقیقتر اهل فنش یک قوه از قوای نفس میشه حس حواس از اون جهت که نفس ادراک معقولات میکند بهش میگن عقل یه قوه دیگه داره نفس که میتونه درک معقولات بکنه الان بنده این حسینیه رو میبینم میشه حس سر صداها رو میشنوم میشه قدرت حسی احساس اما وقتی از آثار این حسینیه پی به مؤثرش بانیانش معمارش مهندسش نمیدونم اون هنرمندایی که این کاشیکاریاری کردن میبرم این میشه تعقل تعقل تفکر کار عقله ما چون یه قدرتی یه جنبه ای داره نفس میتونه تعقل حقایق بکنه میگن عقل یه بعد دیگر نفس یه قوه دیگر نفس میتونه شهود حقایق کنه میگن دل مثلا شما الان می‌بینید که بنده الان میگم این لوسته روشنه خب خیلی طبیعیه چون حس بینایی داریم هممونم درک میکنیم این مربوط به یه جنبه از قبای نفسه صدا رو میشنبیم میگیم این یه جنبه از قبای نفسه با همدیگه راجع به یه موضوعی بحث می‌کنیم تفکر و تعقل و به یه نتایج عقلی میرسیم این میشه قدرت تعقل ما اما یه وقت شما میگید به دلم خطور کرده فردا فلان حادثه رو خواهد داد روخ میده این چیه؟ حسه هیچ ذابطه هی حس نیست حس یه قدرتیست مواجهه با محسوس عملش احساس شما اینجا که مواجهه با محسوس نداشتید، واقعه فردا میخواد رخ بده عقل تعقل تعلق قدرت عقلی به معقولات سقراکبراچیدن نتیجه گرفتن اینجا شما سقرا کبرا چی دید نتیجه گرفتید لذا در عرفم میگید به دلم افتاده به دلم خطور کرده اینم یه قوه از نفس که میذارن دل در زبان عربی خب حس حواس عربیه عقل لب نها هجر اینا عربی تو قرآن به کار رفته نها و لب و هجر عقل از ریشه عقل تعقل و تفکر و اینا به کار رفته تو روایات هم فراوان به کار رفته راجب اون سومی فعاد گفته شده جمعش هم افعده قران کریم وقتی میگه شما چه ابزاری داری که حقایق عالمو بشناسید میگه والله سوره نحل والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون و وجعل لكم السمع و والافعده لعلكم تشکرون جای دیگه میگه قلیلن ما میگه ما برای شما چشم قرار دادیم گوش قرار دادیم افعده دل قرار دادیم والله ها اخرج کن, من بطون کن. لا شما وقتی به دنیا اومدید از شکم مادرانتون خارج شدید چیزی بلد نبودید وادالا یاد میگیدید حالا با شناخ بیدا کنید در بعضی واجه ها کلمه فعاد افعده رو به کار برده در بعضی جاها قرآن کریم و روایات کلمه غالب را به کار برده در مورد معراج پیغمبر اسلام اونجایی که پیغمبر بود و پیغمبر و حتی جبرائیل هم گفت دنوت و لحترخت که اصلا امکان راهیابی در اون حریم برای من نیست این مقام قرب در اثر مقام نبویست دنا فتدل لا فکان غاب قوسین و ادنا قرآن کریم یکی از ویژگی های پیغمبر و در اونجا چه می نامه این ارزش انسانی که انسان تا به کجا راه پیدا می ک رسید به اون درجات اعلایی که بچی ما کذبل فعادو ما رعا ما کذبل و ما رعا اون چرا فعادش دلش نمیگه سمعه نمیگه علمه نمیگه فهمه میگه رعا دید. پس معلوم دلم یه قدرتی است که چشم دارد میبیند گوش دارد میشنود. چشم دل باز کن تا که جان بینی وان چه آن بینی پیام بر وقتی اوج میگیرد در سوره نجم دنا فتدللا فکان قابه قوسین او ادنا یعنی از این مقام دیگه بالاتر شما نمیتونید بفهمید مرحوم علامه تباتبائی رزوان الله تعالی علیه تو این ذیل کلمه ما دنا فتدللا فکان قابه قوسین او ادنا میگه او ادنا یعنی دیگه نمیتونی بفهمی یعنی چی تعبیر خیلی قشنگیه یعنی دیگه از بالاتر دی نمیفهمی اون چیزیست که خدا میدونه و پیغمبر میدونه وقت اونجا ویژگی پیغمبر چیه؟ ما کذبل فعاد و ما رعا فعاد پیغمبر دل پیغمبر دید. اون چرا که دید دروغ نبوده شما ندیدی ممکنه برای سخت باشه پس یه همچه قدرتی هم در دنیای وجود انسانه یه بحثی حکما دارن اصل بسیار زیبایی است با این حدیث مشهور من عرف نفسه فقط عرف ربه کنارش بگذارید خیلی قشنگ هم حدیث میشه خوب فهمید همون مطلب میشه خوب فهمید میگن النفسو فی وحدتها کل القبا نفس با اینکه یکیه فی وحدتها یک ما یه نفس بیشتر نداریم اما این نفس یه قوهش میشه عقل یه قوهش میشه دل یه قوش میشه حس قوای مختلفی داره ان نفس فی وحدتها کل القوا نفس با اینکه یکی بیشتر نیست ولی همه قواها توشه بعد اون روایت رو ببینید من عرف نفسه فقط عرف ربه کسی خودشو بشناسه خدا رو شناخته میاییم راجب خدا یکی از مشکلاتی که در خداشناسی اشائره و معتظله پیدا کردن شیعه پیدا نکرد نسبت به همین مطلب کلان عرض می کنم اشائره اومدن گفتن صفات خدا جدای از ذات خداست چرا؟ چون می گفتن صفات که متعدده ذات که یکیه اگر صفات این ذات باشه پس باید ذات هم متعدد باشه لذا برای اینکه که دوچاری مشکل نشند گفتن صفات از ذات جداست مثلا خالق، رازق، مالک، هننان، دیان هزار اسمی که شما تو دعای جوشن کبیر خوندید اینا همه اسم صفات خداست دیگه خب خدا که ذاتش یکی بیشتر نیست این همه صفات اگر این ذات باشد پس باید ذات هم متعدد باشه لذا اومدن گفتن صفات رو از ذات جدا میک چه مشکلاتی پیش اومد چه مشکلات خب اگه صفت از ذات جدا باشه پس ذات فاقد این صفت بوده فاقد باشه چگونه واجد شد فاقد ندارنده واجد دارنده چگونه دارا شد پس یکی دیگه بهش پس این چه جور خداییه که صفتی رو نداره بشمیدن بیان دیگر اگر نداره بعد پیدا میکنه تغییر و تبدل تغییر و تبدل مال موجود کمال محض یا مال موجود استکمالیه این که مال موجود استکمالیه این چه جور خداییه دوش اما شیعه چی جواب میده؟ شیعه میگه صفات خدا عین ذات خداست. این مفهومن متعدده. مستاغن یکی بیشتر نیست. همون معنی مثل این که راجب نفس ما میگیم ان نفس وی وحدتها کل قبا. یعنی خدا ذات اقدس الهی یک. از اون جهت که میافرینه بهش نسبت میدیم خالق. از اون جهتی که قدرتشو تعلق میده بمیرانه به بهش میگیم ممیت از اون جهت که ارادش رو متعلق میکنه به یه انسان حیات بده بشمیگیم مهی یه چیز بیشتر نیست اینا جلبات اون یک چیزه نفس هم جلوه ای از خداست همینطوره نفس یه چیز بیشتر نیست وقتی تعقل میکنه بش میگیم عقل وقتی که شهود حقائق میکنه بش میگیم دل حالا اولین مطلب عقلی در اینجا اینه اگر خدا به من و شما نفس داده که داده و اگر خدا در قرآن برای نفس اونقدر ارزش قائله که چندین قسم خورده تا بگه به نفسه و ما سواها اگر خداوند نفس را اون خلقت ارزنده ای می داند که به فرموده امیر در خطبه اول نهج البلاغه و مسئولت انسانن به خاطر این نفسه خب مگر قوای نفس بد میشه که بگیم دل بد عقل خوبه عقل بد دل خوبه عقل خوبه حس بده حس بد عقل خوبه از خدا هیچی بد به ما نمیرسه ما بدش میکنیم ما باید شکل درستش رو ببینیم چیه اینا همه در کنار هم درسته حالا من اول در دنیای درون خودمون حس و عقل و کنم آقا حس شما به وسیله این حس بینایی چقدر سنها گناه کردن؟ بر مبنای نگاه به نامحرم، بر مبنای نگاه تحقیرآمیز بر مبنای نگاهی که دیگران مسخره کنند. با این زبان چقدر سخنان بد غیبت، مردم آزاری. حالا خدا چون بینایی داده بده؟ ما داریم بد استفاده میکنیم. بینایی رو میشه در مسیر درستش به کار برد حالا همین حس را در کنار عد، چقدر آدمای خائن، ظالم، استثمارگر، استحمارگر در این عالم با تعقل بهتر استثمار کردن، داریم یا نداریم؟ چه دزدی با چراغ گزیده در برات کالا. آدمای زیرک چیز خیلی عقلشونو میتونن به کار بندازن، بخوان شیطنت کنن، اینا بهتر میتونن شیطنت کنن یا آدمای کودن؟ خب بالا عقل بده. یا عقل درم بعد استفاده میکنم دلم همینطور عقل کارش تعقله در جای خودش بسیار درسته حس کارش احساس در جای خودش بسیار درسته دل کارش عشقه ولی اگر معشوقش لیاقت دل نداشت عشق میشه غلط اگه عشق غلط شد مثل تعقل در مسیر غلطه مثل احساس غلطه شما با امام صادق علیه السلام فرمودن نگاه به نامحرم تیری از تیرهای شیطانه خب حالا نگاه بده؟ و بعضی میگن بابا تاهر اشتباه گفته ز دست دیده و دل هر دو پریاد هران چه دیده بیند دل کند یاد بسازم خنجنی نیش اشز پولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد او درست گفته ولی منظوری نیست که چشم بده کورش کن میگه چون چشم اگر تحت کنترل عقل و دل بوده عقل و دل فرمان میده چیو ببین چیو نبین میشه یا نه؟ یه آدمی که الان گو... عقلی داره کنترل دلی داره دلش دله دلش گل نیست به قول معروف تا میاد چشم به چیزی توجه کنه که عقل و دل که فرمانده است و میدونن میگه نظر تو برگردم تا گوش میاد به یه طرف میگه گوش نده اینجا در اختیارشه اگر در اختیار نباشه عقل دنبال رو چشم باشه خب چشم نگاه میکنه بعد تو دل چی میشه تحصیلش دوشه میذاره. حالا میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد هر چه دیده بیند دل کند یا تا اینجا معلوم به سازون خنجری نیشش زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. منظور از این خنجر در اینجا چیه؟ یعنی هرگز صحبت حاضر قائف شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است. من در میان جمع و دلم جای دیگر است. امکانش نیست یه فردی، چنان دل به جای دیگه داده شما رو نگاه میکنه کنه هرچه اشاره می کنی نمی بینه می شی یا نمی شه آقا با شما میگم چی ببخشید به خدا ندیدم راست میگه انگار چشم نداره به سازم خنجری نی ششده یعنی یک جور اراده قلبی درست کنم اراده عقلی درست کنم که این در اوجش می شه عشق می کنم چون آشق غیر از, غیر از معقول نمی بینه هم عشق هم عقل در اینجا درسته حالا برای اینکه وقت زیده ما چار پنج شب بیشتر وقت نداریم بتونم بحث رو به جایی برسونم اجازه بدیدی مقدمه کافی باشه بیام بی اینجا چی شد اگر امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند این سرزمین مناخ و رکابن و مسار او و شاقن شهدا اینجا جایگاه جانبازی شهیدان آشد است عشق هم کار دله دل با عقل جمع میشه یا نه یه بحثه اول چی کردم عقلی با اون مقدمات دل بعدی از ابعاد یا قوهی از قوای نفسه عقل قوهی از قوای نفسه حس هم قوهی از قوای نفسه نفس ارزنده است نفقه روح الهی در وجود ماست نفقه روح الهی که بد نداره ما بدش میکنیم پس برای اینکه بدش نکنیم چه کار کنیم باید بین عقل و عشق رابطه درست رو برقرار کنیم عشق بشه عاقلانه عقل بشه مرکب عشق این میشه یک انسان که تمام ابعاد وجودیش هماهنگ و قشنگ اومده بالا یه مثال ارز میکنم بعد تحلیل میکنم دقت بکنید ببینید الان مثلا فرض کنید جسم و مثال بزنم یه انسانی که از مادر متولد شد خب دست داره پا داره چشم داره گوش داره کله داره این همین جوری که داره میاد بالا ما فرض کنید یه جوری رشدش بتوییم کلهش بشه به اندازه یه انسانی که الان پونزه سال گذشته پونزه ساله از کمر به بالا بشه به اندازه یه انسانی که الان پونزه ساله شه. ولی کمر به پایین به اندازه یه انسان دو ساله باشه ناقص نیست. یا بعکس یه دستش به اندازه انسان پونزه ساله بشه یه دستش به اندازه بچه دو ساله بگی مشکل داره قوای نفسم اگر در روند تکامل انسانی و معنوی حس باشد عقل میدان نیاد چی میشه؟ حیجانات احساسات با این احساسات تنها منهای تعقل چه بلا به سر مسلمانا در طول تاریخ نیومده با احساسات تنها این کاری رو حل میکنه و متاسفانه چون بحث تعقل سخته نیرو میبره فکر میخواد کار میخواد اکثریت و تو احساسات و هیجان نگاه میدارن میگیم چرا این کارو میکنی آقا عشق است دیگه یعنی چی من چه میدونم این عشقه این دروغه این هیجانه این احساسه، این لطمه میزنه، مخصوصا در دنیای امروز که فکرها تو دنیا ره، اندیشه ها مطرهه این همه دشمنان ما کمین کردن، بر ما خورده بگیرن توی این سایتها چه میکنن؟ توی ماهوارها چه میکنن؟ توی شبکه های مجازی و توی این تلگرام ها چه شبعات غلط اندازی رو که خیلی آشم دروغه افرادم نمی دونن زود تحت تأثیر قرار می گیرن. اینجا ما باید چجوری برخورد کنیم؟ اگر آمیرالمومنی فرمود اینا شهیدان آشهدان آشهدان شهیدن عاشق شهید یعنی چی؟ من یه احساسات و حیجان و دل بخایی دل نه منی دل واقعی. یه کاری رو می کنم بعدمیگه دلم می خواد دیگه خب دلت می خواد مگه این دل قرار بوده بخواد مثل اینه که نگاه یه نگرانی کامی کنیم میگه دیگه میگم مگه یه چیز قوی تر از چشم نداشتی که چشم کنترل کنه حرف میزنم دلم میخواستی حرف رو بزنم خب شما یه چیز قوی تره. به همین جهت در سلوک ارفانی اهلفن فن میگن شما تا اول با عقل خیلی حرف قشنگا دقت کنید چه میکنم تا اول با عقل مجاری حواستون رو کنترل نکنید نوبت به کنترل عقل به وسیل دل نمیرسه پله پله باید بری بالا همینطوری که شما تا لیسانس نگیری تو کلاس فوق لیسانس نمیدن فوق لیسانس نگرفتی تو کلاس دکترار راد نمیدن اول بیا رو عقل جوری کار کن که بینایی در تحت کنترل عقل باشه شنوایی در تحت کنترل عقل باشه زبان در تحت کنترل عقل باشه لذا میگن یه بنده خدایی به یک استاد عارفی برخورد آقا از اون دستور العمل ها سلوک عرفانی به ما بده ما مخواییم تحالی پیدا کنیم گوه اهلش نیستی در میری یه تعبیری دارن اینجا اهل انصافن قشنگه میگن تخم مرگ رو در نظر بگیری در حالت عادی خب به اندازه یه نیمرو میشه میتونید ازش استفاده کنید اما اگر حوصله کنید مراحل لازم رو طی کنه زیر یک مرغ یا ماشین جوجه کشی قرار بگیره میشه یه مرغ خودش ممکنه ده و تخم تخمر تولید کنه دهها جوجه از او بگیرید. اما چیه؟ صبر داشته باشید حوصله داشته باشید مراحل تی کنه. حالا این تخم مرغ زیری مرغ خوابوندی ده روز دوازده روز ورمیدارید. نه تخممرغ است که به درد نیم میخوره نه جوجهش گندیده دست باید بداازید دو بعضی یک راههایی رو شروع میکنن نیمه کار راهها میکنن آقا دانشجوی پزشکی چهار سال خونده میره موا این آدم میکشه. میگه دلم برای مردم می تو حق نداری تو وز به اون درجه نرسیدی. تو مراحل تعالی هم همین اینطوره هنوز مراحل تو نشده. لزانگاه آقاون نمیتونی بلم کن اسرا رو اسارگو خیلی خب رفت ان درون یه جواب آورد داد بش. اینو ببر از تا فردا این موقع ۴ ساعت در شما نکنی بعد ۴ ساعت بیا اینجا. وقتی اومدی، او این خیلی خوشحال، ما دیگه یه جعور رو میبریم نگه میداریم بعد 24 ساعت میای ما هم میشیم جناب زبدت و لاعرفیم نمیم و چنانی حرفا دیگه خب جعور رو برد و یه چیزی توش میلوله چیه؟ هی بس پشتر، هی بس پشت رفت سر جعور برگش، رفت برگش بالاخره تعمل نکرد در جعور با بای کرد یه موش بود پرید رفت اه؟ معلوم این آدم حقه بازی ما رو مسخره کرده جعبه خالی رو برداشت با شدت عصبانیت اومد در خونه آقا مسخره کردید ما رو گفت عزیزم یه موش رو تو جعبه نمیتونی نگهداری میخوای اسرار الهی رو در این وجود نگهداری برو آقا جون زود هنوز شما که نمیتونید چشمتو تحت کنترل عقل بیاری، شما که گوشو نمیتونید تحت کنترل عقل بیاری، مشکل اولیه، مشکل عقله، هنوز نوبت به دل نرسیده. اگر اونجا چیزی وارد دل بشه، چیزیست که از کانار چشم، بیر کنترل شده عقل وارد میشه. حالا اجازه بدید من روایتشو از معصوم براتون بخونم، بعد به ای که امشب وقت اجازه میده، تحلیل حکیمانه حکما رو براشون بگم. چند روایت همه اجازه بدید از امیر المؤمنین بخونم از کتاب قرر الهکم وسائل و شیعه نهد الولاغه مستدرک الوسائل یک قرر از امیر المؤمنین علیه السلام حرامون الا کل قلب خب گفتم فعاد میگن عقل میگن قلبم میگن عقل که فهمیدیم عقله فعادم گفتیم دل قلب چیه قلب اگر غرینه داشته باشه منظور دل قلب و معنی دل به کار میبرن فعاد اگر قرینه داشته باشه قلب به معنی عقله قلب و معنی عقلم میگیرن اگر قرینه نداشته باشه قلب دوتا با همه عقل و دله لذا در اینجا چون قرینه نداره بلکه با یه قرائنی نشون میده منظور از قلب عقل به علاوه دله لذا در قرآن ما داریم اونجایی که قلب و به معنی عقل به کار برده لهم قلوبون لا یفقهون بها کار چیه؟ کار عقل دیگه پس اینجا قلب یعنی عقل در سوره قاف آیه 37 ان که ذالک لذکر لمن کان لهو قلب این یه تذکره ولی برای کسی که قلب داره اینجا امام جا... کاظم علیه السلام اصول کافی جلد اول باب عقل و جلد حدیث شماره 12 به هشام فرمودن ای این نفیزال که ذالک لذکر لمن کان له قلب ای عقل این قلب یعنی عقله تحلیلش هم اینه ببینید عقل و تشبیه میکنن حکما مثل کار کارخونه مطالبی رو که میخواید از راه چشم و گوش و زبان و موعظه و مطالعه به دست بیارید تشمیه میکنن به مواد اولیه تعقل و تفکر رو تشمیه میکنن به کار کارخونه نتیجه ای که از این تحلیل ذهنی میگیرید اینو میگن تولید کارخونه که کشف یک حقیقت جدیدیه لذا ذکر یه خوراکه باید به چی بدیم؟ به عقل. ذکر تذکر مثلا فرض کنید بنده الان توی کوچه جلو حسینیه دارم رد میشم احیانا یه کاری دارم انجام میدم که این کار من آقلانه نیست کار من شرع پسند نیست شما احساس تکلیف کردید به بنده تذکر بدید به من میفرماید آیا این کار درسته که شما انجام میدید یعنی چی؟ یعنی بررسی کن با ذهنت میتونی دلیل بیاری درسته پس این ذکر یه ای خوراکه برای چیه؟ برای عقله لذا اونجا قلب و به معنی عقل به کار گرفتن قلب به معنی دلم خیلی جاها به کار رفته اینجا عامه قلب به معنی عقل و دل حرامون علا کل قلبن هر عقل و دلی که چی باشه حرام است و او چی حرامه خوب دقت کنید حرامون الا كل قلب مغلوب به شهوه. هر عقل و هر دلی که شهوت شکستش داده حالا من یه نمونه از دل بگم یه نمونه از عقل بگم بعد چی حرامه ادامش هنوز نخوندم میخونم انایت بکنید اینا درس مکتب مكتبه امیرالمومنین اینا درس ایام محرمه که ما ببینیم دین چی میخواد از ما اگه قرار این انسان به چه مقاماتی برسه، من ح... یک مثال تو عالم تعلقات دنیوی میزنم، یه مثال حتی تو مسائل معنوی میزنم، شهوت شکم، که این مسئله ایش مربوطه به دنیای ماده و غریزه و حیوان هم داره، حیوان وقتی گرسنش نش میشه، اگه قدرت داره مثل شیر و بلند یه حیوان دیگر رو به بدره می داره. اگر گاو و گوسفند باشه قدرت داشته باشه مزرعه یونجه ی بیچاره ای که با خون دلی یه مقدار یونجه کاشته حالا دو تا گوسفند تو خونش داره یه آدم ضعیف یا مگر گاو مثرعه لذا حمله میکنه اینجا میخواد شکمشو سیر کنه گوی بنده خداییم گاو صفاتان یه بنده خداییم حالا بنده, خدایی بنده خدا بوده یا نه؟, نه نمیدونم این بنده شهبته وارد جالیزه یه بیچاره ای شد هندونه خرمازاره میشکاش شیرین تراشو می خورد گفتن آقا مال مردم حرامه گفت من کاری به حرام حلالش ندارم من برای خاصیتش میخورم خب انسانی که گرفتار شهبت شکمه حالا این مقلوب شده عقل میگه آقا مال مردمه حساب و کتاب داره جامعه باید نظام داشته باشه انسان باید یک شرافت انسانی برای خودش مطرح بکنه شر میگه حرامه او چی میگه؟ چنان شهبت شکم برو غلبه کرده نه شر اینجا میتونه حاکم باشه نه عقل پس حاکم چیه؟ حاکم شهبت این مثال در عالم شهوات حیوانی حتی مثال تو مراحل بالاتر مجلس روزه گذاشته مجلس روزه گذاشته معنوی دیگه از مجلس روزه امام حسین با همه ارزشی که داره و مباحات میکنیم هیچ چیزی در این عالم به اندازه عظمت امام حسین که دلها رو به طرف خودش برده چیزی نمیتونه ببره بماند ببینید من تو حسینی ارشاد تهران گفتم آقا لاس وگاس کجاست؟دی یعنی چند شب قبل لاس وگاس کجاست؟ منطقه ایش در امریکا مخصوص کساافت کاری دیگه به اول دنیا باد اونجا برن شرابخورارهای اول دنیا باد اونجا برن هم جنس اول دنیا باد اونجا اصلا شهر بنا شده برای همچه کساافت کاری ما آنجلس بودیم به ما زنگ زدن برای امام حسین تو لاس وگاس جلسه گذاشتن نمیاییم دو ساعت و نیم سه ساعت با ماشین باید از روزانجلس می رفتیم. گفتم بریم. ما حرکت کردیم رفتیم. تو این شهری که از در و دیوارش گناه می خدایا تو می دونی که من یه شب اونجا بودم به من چه گذشت. تا صبح. ولی لا این ساختمان سر به فلک این محیط های کزایی. یه دفعه یک پرچم سیاه بزرگ. السلام علیک یا ابا عبدالله. امام حسین لاس هم اومدید شما امام حسین چه کرده با دل‌ها حالا بمانه مجلس روزه گذاشتن بنده شما نرسیدی روزه من بیای نتونستی بیای نخواستی بیای بعد از روزه با شما قهر میکنه آقا چی شده روزه من نیومدید مگر روزه مال شماست پس اینا میشه مغلوبه شهوته بس مقلوب مغلوبه شهواست فرق نمیکنه بحث شهوت یه زمان شهوت جنسیه یه زمان شهوت مقامه شهوت میزه شهوت انانیت روزه من شما نیومدی خدایش بیا مرزه استادم رو من شاهد بودم در تهران یه بنده خدایی هی میومد پیشیشون فلانی فلان روزه داری نمی نمیای سال بعد فلانی روزه داری نمیگه چرا وقت اصرار داری من میام روزش. گویشون میخواد فقط یه بار یه عکس از شما تو روزش میگیره. گو من برای همین نمیام آخه این شهوته حالا امیر المؤمنین چی میفرماید حرامون علا کل قلبن مغلوبون به شهوه چی بشه انینتفع بالحکمه که از حکمت برای او نفعی حاصل بشه عجب بذارید یه مثال باز کنم شما این کاغذی که دستبنده است یه کاغذه مثلا سفید، صاف، براق، بر قشنگ، این دست بند است. میگن آقا این کاغذ شروع کن روش نوشتن. میگم باش. من بخوام شعر بنویسم، حدیث بنویسم، آیه بنویسم، یه مطلب مفید بنویسم. یا خدایی نکرده بخوام یه چیزای مضر توش بنویسم روی این کاغذ میشه. ولی حالا این کاغذ جوری توش نوشته شده، جای خط خالی هم توش نمونده و اگر احیانا این نوشته رو با یه دستگاه پاک کردن حالا به من میدن میگن روش بنویس. میگم آقا تو این نمیشه چیزی نوشت. این صفحه به ای است که مطلب دیگه نمیتونم من روی این بنگارم و بتونم اینو توی بایگانی قرار بدم یکی دیگه بتونه استفاده کنه امیرالمؤمنین علیه السلام امام من و شما میفرماید اون غلبی که یعنی عقل و دلی که مغلوب شهوت شده شهوت بر او غلبه کرده دوتا مثال زدم شهوت تو عالم شکم و حیوانی و غریزی شهوت حتی تو عالمی که به عنوان تعلقات معنویه مثلا شهوتی علمم میتونه به صورت شهوت در بیاد لذا زمنی که العلم و نورون العلم اکبر اکبرم میشه دیگه پس همین علمم میتونه هجاب بشه همین جور میتونه نماز خوندن من لذا امیر علیه السلام نهجل بلاغ الله اکبر کم من سائمن لیس له من سیامهی إلا الجوء والزما کم من قائم لیس له من قیامهی إلا السهر والعناء حبزا نوم الأكياس رف چه بسا شب زنده دارانی که از شب زندهداریشون فقط همون خستگی بیداری شب میمونه چه بسا روزه دارانی که روز فقط ورسنگی و تشنگی براشون میمونه خب یا قرآن کریم ویلون للمسلین وای بر نمازگزارا خب، نماز که دیگه عالی کریم رابطه ای عبادیه با حضرت احد و عمود و دینه اما نمازی که زمینه ریا باشه زمینه تظویر باشه یعنی اینم میشه شهوت دیگه پس ممکنه من نماز میخونم مغلوب شهوت باشم روزه میگیرم مغلوب شهوت باشم به قول خاج نسیر در کتاب اوصاف الاشراف عجب زیبا گفته در سجده سر به نهادی اون در سرداری هم به نهادی. در سجده سر به خاکنهادی نهادی اون چه در سرداری هم به خاک نهادی خب حالا این سرمایه وجودی من قلب یه جلوه از جلوات نفسه نفس تجلی نفخه روح الهی در وجود منه همه ارزش من مالی اینه که نفخه الهی در وجود من تجلی پیدا کرده و شده نفس عالی ترین جنبه نفس هم عقل و دلشه عقل و دلم با هم بهش میگن قلب خب قلبم باید بهرمند از حکمت بشه قلبه اما میگه اگه مغلوب شهوه شد نه لذا اگر بخواد یک انسانی که مغلوب شهوته تحلیل عقلی کنه تحلیل عقلیش حکمت نیست از امیرالمومنین علیه السلام سوال کردند آقا معاویه خیلی زیرکه زیرک بودا امراص هم خیلی زیرک بود زیرکی بی‌معنی ارزش می‌کنه اما بارها عرض کردم تو همین حسینیه هم سال‌های قبل گفتم اگه امراص امروز بود مشاور کاخ سفید می‌شد خیلی آدم عجیبی بوده کیسنجر در مقابلش که کسی است که دل امیرالمؤمنین رو خون کرده از بس کلک بلده باقبه بازی بلده خب معاویه هم همچو مهر‌های رو دور خودش جمع کرده. و امیر المؤمنین کردن آقا معاویه امر این خیلی زیرکن حضرت فرمود اون عقل نیست اون نکره شیطنت یعنی قشنگ میتونه تحلیل کنه قشنگ میتونه دوستا چارتا بکنه سغرا کبرا بچینه آنالیز کنه این مطالبه تو ذهنش رو چنان بكنه بله میتونه اما بر مبنای چی غلبه شهوت پس این حکمت نیست دلم همینجور چنان دلداده میشه چنان عاشق میشه چنان به خاطر معشوقش چه میکنه اما اصلا معشوقش غلطه نحوه دلدادگیش غلطه نه عشقش عشقه نه عقلش عقله نه تعقلش قابل حسابه نه عشقش قابل حسابه روایت دوم وسایل جلد 16 صفحه 25 اکثر مسار العقول تحت بروغ المطامع اکثر جاهایی که عقلها سربریده شد سربریده شد یعنی چی؟ یعنی مرد عقلی که نتونست عقل باشه کجاست؟ اونجایی که تمعها گل کرد تمع چیه؟ یه جنبه هوای نفسه یه جنبه شیطانی دنیای وجوده یه جنبه شهبانیه نهج البلاغه قصار دویست و یازده کم من عقل اسیر تحت هوا امیر چه بسا عقل هایی که اسیر شدن امیرشون هوای نفسه امیر اسیر رو در اختیار خودش میگیره دیگه اینجا بشین اینجا نشین اینجا برو اینجا بیا این کار بکن این کار بکن فرمانده عقل میشه هوای نفس کم من عقل اصیر تحت هوا امیر چه بسا عقل هایی که امیرش هوای نفسه و این عقل اسیر مستدرکل الوسائل گلد یازده صفحه دویست دوازده چقدر زیباست من غلبه شهوته زهر عقله اون کس که بر شهوتش پیروز شد حالا عقلش خودشونشون میده عقل میاد رو یعنی اگه میخوای عقل بیاد بالا باید بر شهوت غلبه پیدا کنی عقل ایمانی چه شهنه عادل است پاسبان و حاکم شهر دل است عقل در چن حاکم ایمان بابد اینو کسی گفته که گفته پای استدلالیان چوبین بابد ولی هر کدوم در جای خودش درسته حالا انشالله شبای بعد براتون روشن میکنم عقل در چن حاکم ایمان بابد که ز پیش نفس در زندان بابد عقل زد شهوت هست ای پهلوان آنکه شهوت می کند عقلش مخان اونی که وادار میکنه تو مسیر شهوت برم عقل جزئی گاه چیره گه نگون عقل کلی ایمن از رب المنون عقل جزئی عقل کلی که بعد ارز میکنم حالا یه روایت دیگه هیفم میاد با این که چشمم به ساعت داره طول میکشه بهار جلد 77 صفحه 275 یه روایت از رواید هایست که آدمو خیلی به حال میاره به وجد میاره وَلْقَلْبُ بل وَبِلْغَزَا قلب عقل و دل یقومو میسته سرپا میسته قوام داره دوام وجودیش شما یه وقت میگید که آقا دیگه نمیتونم سر پان باستم. افتاده شدم. دیگه توانی که بتونم حرکت کنم ندارم. یک میگیدن طرف الحمدالله سر پاس خیلی خوبه. نشاد داره. وَلْقَلْبُ يَقُومُ بِالْقَزَا قلب غذا خوراک. خوراک میخواد تا بتونه سر پاش واسه. فنزور فیما تو غذی قلبک. ببین چه غذایی دارید به قلبتون میدید. فنزور نگاه کنید فیما تو قضی قلبک چی داری به این قلبت میدی فالا یکون که حلالا لم یقبل الله تعالی که ولا شکرک اگر این غذایی که وارد بدنت میشه حرامه حالا این غذای جسمی تو معده غذای حرام غذایی که از را... همین جوری که ما معده داریم باید غذا وارد معده بشه جان ما در دهنش چیه چشم و گوش غذایی که از دهان جان وارد جان میشه چیه شنیدنی ها و دیدنی ها اینی که میشنویم اونی نیست که خدا میخواد اینی که میبینیم اونی نیست که خدا میخواد مثل این که یه پزشک حاضر به من میگه این غذایی که از راه وارد دهان وارد معده شد اونی نیست که قرار وارد معدهت بشه خب اگه اینجوری شد چی میشه تسبیح و شکرتونم در مورد قبول خدا نیست تسبیح شکر چرا چون میگه میتونه تسبیح هم بر اساس نحوه تحلیل ذهنی عقل مغلوب شهوت باشه لذا طرف مثلا فرض کنید الان توی کوچه داره ذکر میگه آهسته زیر لب کسی نمیشنوبه میبینه روبرو داره یکی میاد اثر اون جور تقضیه تو دل دل چکار کار میکنه عقل وادار میکنه یک کمی ذکر بلندتر بگم بقیه هم بشنوه اللهم صل علیه سینش هم تا ته کوچه میره نمیدونه که کاملا شیطان برش غلبه کرده اینجور دل وقت اشک برای این دل متره. این دل عاشق شد عاشقه چه معشوقی میشه مثل اون عقله که اگر تعقل کنه تعقلش در چه مسیر میشه جمبندی کنم امشب کافی باشه انشالله بقیهش برداشم هنوز خیلی کار داریم امیدوارم این سه شب منده بتونیم بحث رو به یه جایی برسونیم ما اگر از امیر المؤمنین علیه السلام داریم که شهدای کربلا شهیدانی هستند که روایت خوندم براتون نه قبلی ها به اونا رسیدن نه بعدی ها چرا؟ فرمود چون شهید عاشقن شهید برای خدا آشق داریم بحث میکنیم عاشق چیه؟ یعنی دل داده دلشو داده دلو میخواییم بفهمیم چیه؟ باید عقلم بفهمیم باید حسام بفهمیم برای اینکه دل و عقل و حسه بفهمیم نفس و مطرح کردیم اون ارزنده ترین جنبه وجودی ما که عقل یه قوه از قوای اوست یه حس یه قوه از قوای اوس دلم یه قوه از قوای اوست حس کارش احساسه ولی با ذابطه احساس محسوسات درست میکنه. شما خطای عواس دارید سراب آب میبینید، ولی با ذابطه حستون احساس درست رو انجام میده. عقل تعقل میکنه خیلی جاها اشتباه میکنه با جلوشو بگیرید مواظب باشید کنترل کنید با منطق پیش برید تا عقل اشتباه نکنه دلم دلبر پیدا میکنه خیلی بخت اشتباه میکنه دلبری رو به دلبری میگیره که ارزش دلبری نداره عشقی ارزنده است که با عقل همراه باشه چگونه فعلا این مقدارش رو عرض کردم عقلی که عقل باشه عقل کی عقل مغلوبه شهوت نشده باشه حالا بقیه شو اجازه بدید انشالله فرد شب بگم خب اینایی که تو کربلا بودن نماز که می کندن روزه که می اینا حتی چرا دیروز وقتی اصر قضیه کربلا رو تمام کردن حرکت نکردن به سمت کوفه موندن امرو عصر رفتن چرا؟ گفتن کشت شده های ما مسلمانن دفن واجبه مندن کشته شده هاشون رو کنن بدن پسر پیغمبر بر جسته شهیدان عالم رو رو زمین گذاشتن به عنوان خارجی پس الازای اما چی نه تحلیل عقلی شون تحلیل عقلیه نه دلشون دله لذا نه تنها کشته شده های خودشون رو کردن این شهده رو باقی گذاشتن و رفتن حالا میخوان نهایت شکنجه و آسیب و آزار رو هم انجام بدن اومدن دیشب که گفتم خیام آتش دادن، بچه ها رو تو بیابونا دوندن این همه عذیت و آزار رو انجام دادن حالا امروز اومدن اینا رو سوار بر مرکبهای برهنه و کنن به طرف کوفه حرکت بدن امام سجاد علیه السلام دستاشو به زنجیر بستن و این زنجیر رو آوردن از زیر شکم شطور و مرکب به پاها بستن آوردن به دور گردن گردندن امام رو به این صورت این زن و بچه رو حالا نوبت به زینب رسیده ملکه دهره ناموس خداست دختر علیه عظمت زینب همینقدر بس که در عالم مکاشفه شخصی خدمت امام اس علیه السلام رسیده حضرت رو در محرم خیلی متأثر دیده عرض کرده آقا طبیعیه دیگه محرم شما سوگوارید آیا برای جدایی سر جدتون امام حسین از بدن است فرمودن تو عالم مکاشفه اون جای خودش ولی جدم حسینم برای اونگریه میکنن آیا برای جدایی دستای عموجانتون اول فضل است فرمود اون درست ولی عموجانم اول فضلم برای اونگریه میکنن آیا برای اربن اربا شدن عموجانتون علی اکبر است درست اون هم همین جوریه برای چیه برای اسارت عمم زینبه که انقدر متأسرم ناموس دهره حالا زینب آوردن سواره بر مرکب کنن عباس آن جعفر اکبر قاسم می کردید زانو می گرفتید زیر بغلمو می گرفتید حالا ببینید زینب چگونه میخواد سوارو بشه ولی باز برای اینکه اذیت کنن اینها را اینا را دستور دادن از کنار گودال قتلگاه بور بده. داره در مقاتل این زن و بچه مثل برگهای پاییزی که به زمین می خودشون رو پایین انداختن زینب رو میگه یادم نمیره اومد کنار گودال قتلگاه گلیگو میکردم بیجوی او را به هر گل میرسم میبویم او را یه نگاهی کرد ای شبشیر شکسته ها رو کنار زد ای خنجر شکسته ها رو کنار زد ای سنگار از رو بدن آقا برداشت یه نگاهی به بدن پیسر همی کرد امتا اخی امتا ابن تو برادر منی بد دست بر زیر بدن عبی عبدالله یک کمی به طرف آسمان سر و آسمان بلند کرد خدایا قربانی رو از ما خانواده قبول کن اونگاه سلسله مراتب رو رعایت کرد به بدینه کرد جده یا رسول الله هذا حسین المرملال مقطع دماغ مغتال عزا و بنات که زبایا جده این حسین است که بدنش دیک دیکه شده به خون حاقش ببینید رو زمین افتاده یه روزی روی سینه فیغمبر بود امرو رو خاگای داغ كربلا جد دا ایندن و بچه و دختران تو هن که به صورت اسیر دارن به اثارت می سکینه آمد ام جانی نعشه کیه حق داری نشناسی دخترم آخه بدن و یا به سر می یا به لباس حسین نه سر داره نه لباس داره دخترم این نشه باباد حسینه سکینه می گه اومدم این گذاشتم رو گلوی بریده بابا صدایی به گوشم رسید شیعتی مهما شربتاب از بماما او به شهید من او غریب من فذکرونی آیا مدن با نوازش بچه رو جدا کنن یه بغ زینب دید با تازی آزه به جان زینب زکیدو سلالله علیکم یا مولای یا اب عبدالله شبتم شب زیارت یاب عبدالله با تجو صلی الله علیک یا مولای یا اب عبدالله السلام علیک یا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك, السلام عليك, السلام عليك وعلى الأرض التي هلأت بفن الله عليك من لي سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جالح الله آخر لحد من لين زيارتكم السلام على الحسن اللهم باسمك لعظيم لعظم لعزل جل لكرم بمولانا صاحب الزمن يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوم ثبت قلبي على دينه بكفنا يا غازي الحاجات ويا قاضي المحامات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء غدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا دائم الفضل البرية يا باستال يدين بالعطية يا صاحب المباعب السنية سل الله محمد وآله خير الوراستجية واغفر لنا یا زلالام فی حازه لعشیم یا سری ارزام اغفر لمن لا یملکو الا الدعا ورسو رجا وسلام سلام مول بکا یا صابقا یا دافن غر يا نور المستوحشين في الظلام يا آل الله لا يؤلم على محمد وآل محمد وفعل بما ما أنت ولا تفعل بما ما إلهي يا حميد معب محمد يا, يا علي بعد علي يا فاطمة بعد فاطمة يا محسن بعد الحسن يا قديم الاحسان بعد الحسين وتسعة المعصومين من زرية الحسين اللهم عجل بليك الفرق واجعلنا من انصارك بأذانه اللهم نصر من نصر الدين من ظُلْمًا خَزَنَ الله اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین اللهم اشغل الظالمین به الظالمین و اجعلنا بین همه صالمین و ظالمین اللهم اجعل اباغ به امورنا خیرا اللهم وفقنا لما توحب و ترزا اللهم اغفر لنا ولوالده اینا ولوالده ای بالده ول ولمن وجبله حق علينا ولمن وسانا بالدعا بالنبي و